اللهم من الشيطان رجيم، عبد الرحيم، الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله، وآل ه الطيبين الطاهرين المعصومين، واللّه تدايمت على الله معفرنا جميع مشابلينا، خم ناب رحمتك يا رحم از شد که این روایتی رو در مسادر درجه اول اهل سنت از آیش نرکرد که ما ارز این حدیثی که از احادیث تحصیل گذار بوده در حلیت غنا که خاص این مدان عبارت خود اونا رو بخوندیم یه واقعا طولانی میشه و نقطه خواست اون نقطه های عمدش رو عرض می کنیم ارز کردیم این روایت خب واقعا منشع ابهام زیادی شده حتی مثلا من با مثال در این که ابو بکر زید که اون دو دختر زدیاریه به نامی خوندن نحنی کرد بعد پیغمبر خانه اشکال نداره در خونه. من زم توی همین فتح الباری از قول بعضی از سنت نامی کرده که نحی ابو بکر بخاطر این بود که ترسید پیغمبر از خواب بیدار بشن یعنی دو, دو خواب به نامی احتمال داد که صدای اونها موجب بیدید که پیغمبر از خواب بیدار بشن و نزا نه کرد خیلی عجیبه تصدیق داره از و شیطان اند رسول تصدیق به مزمارات و شیطان داره قرادم این که اهل سنت و این صافن هم این بحث هست یعنی واقعا بعد از اینکه روایات در کتب اهل سنت همون هم رو که من عرض کردم که اینا دنبال این بودن که خبر ثبیته صرف داره خیلی مراجعه به شواهد تاریخی هم میکردن و اینطور نبود که البته این بود این بحثه که ادهی تعبول صرف رو قبول میکنه ادهی گفتن نه اگر ما این قبول بکنیم به تعبیر ما این لوازمی میداره مثل اماراتشون لوازمی داره التزام التضام به لوازه مشته میشه داره اصلا ارز کردم سابقاً، یکی از نکات حساسی بین دو فرده کسایی که دنبال و مطلق بودن برای خبر و قال تعبول صرف بلغ ما بلغ نیکیش همین بود خود بخاری هم داره ارز کردن شخص به نام مسر مسروق ابن الاجده اهل یمن بوده بچگی اون دوزیزیم بعد پیدا شده بهش مسروق میگفتن دوزیده شده این حدیثی را از در سعی بخاری داره از مادر عایشه. ام رومان در باره آیه افت خب در, در بخاریم هست لیکن از اون برد در سیره مسلم نویشتن آمدن او به مدینه وقتی بود که ام رومان فوق کرده مثال بارز چند باره ارس کردن خلونه من هم بردار از یک طرف بخاری نرم میکرده از یک طرف خلاف واقع ادهی از اونا گفتن ولو واقع این از که مسروح ام رومان رو دهت نکرده لم یدرک ام رومان لیکن چون بخاری نرم که بودن قبول داریم مثلا در همین حدیث سعی کردم به این در اهل سنت که این دو جاریه تو تغمیانه چی بودن اسمشون چی بود اسم این چه اضافه اسمی یک نفرشون نوشتن و نوشتن این کنیز و همه خصال ابن ثابت بود نمیخوام اون رو اسم بدم باز بعدیا مثلا اشکال کردن که اگر این بود و کنیز حسان ابن ثابت بود و خدمت پیغمبر رسیده بود این باید توی کتب صحابه توی صحابیات نقل میشد اسمش چرا اسمش اونجا نبود دیدی دقت کرد وضعیت کار رو یعنی اینا هی میخوان یک توجیف بکنن میخورن به یک مشکل چدید سال چهار حالا یا حالا شب مخواستیم نظام رو بخانه طول میکشید دیگه حالا به همین مقدار اقتصالی اکتفاق میکنید نقطه که توی حدیث هست آیشه میگه که جایفان تغنیان آلت ولیست آب این این نقطه رو یه مقدار توضیح بدیم اپنی تو خود احل سنت توضیح اجمالی دادن ما عرض کردیم این اولا چون چند بار عرض کردم یک توضیح فنی راجع این قسمت اینه که اصولا اسناد اشتقاقی با اسناد حدثی یا فعلی فرق میکنه یعنی ممکن است بگیم این شخص یوغننی لکن لیس به مغنی اندی جاریتان توغنیان ولی تا به مغنیت در یکی از روایاتی که خوندیم ولع ذهن وراش من اشاره کردم در وقت خوندنش که اشته جاریتا مغنیه او توسن و انتغنی ببینید یعنی جاریه مغنیه یک عنوان داره توسن و انتغنی بلده یعنی بو اولیومزی ما برقدرت هنوز مغنیه نشده لکن توسن و انتغنی و این نقطه است که ما چرا ران عرض کردیم و اصلن در زبان فارسی ما هم همینطوره مثلا ما با مثال ممکن است بگیم فلانی این قفل رو با چابو یا با میله آهن باز کرد می‌بینید اسناد می‌دیم باز کردن رو اما نمی‌گیم اون چابو یا میله آهن چریده مفتاح ممکن است بگیم فتح الباب به حدید مثلاً او فتح الباب به سکین، لَكن به سکین نمیگیم مفتاح. این نکته چیه که اینه چون چند بار از کردیم، وقتی موضوع توضیح فنی ادبی چه نکته ادبی هست که در اسناد اجتماعی با اسناد حدسی فرق میگذاریم مثلا میگیم این آقا میباید مثال، این آقا این مطلب رو نوشت، اما این آقا نویسنده نیست. کتاب از کتاب ولاته نه لیسه کاتب هم کاتب نیست یعنی ما در اصناد اشتقاقی هم در کتاب مرموم آیتباتباری هم زیاد این مطلب تکرار میشه فرق بین اصناد اشتقاقی با اسناد حدثی و فعلی که این کلام خیلی واضح است تو کلام آیشم آمده این بی ولی تغنیان ولیستا به مهنیت تغنی لیکن لیست مهنی این فرق همولا نکته فنمی چیه این یک دو در اینجا مراد چیه در این حدیثی که نقل کرد. کرده اصلا که تحلیب فنیش اینه که ما در وقت بحث, بحث های اشتغاف و قیده اشتغاف از کردیم یه اصطلاحی هست مثلا فرصیب مثلا قائم یا مثلا غارب اصطلاح هنگایی اینطور تفسیر میکنن اصطلاح نه تفسیر بحث اشتغالیش اونه که زارف کسیست که مثلا زارف اسناد ضرب به ذات این طوری تفصیل میکنه از صحیحش در باب تحلیل اینا رو اصطلاح هم به شونیم تحلیل لغمی صحیحش اینه که در باب مشتقات مثب به نظر بوی حدث نیست خوب دقیق چون اینا بحث اعتباریش دیگه لغت بحث اعتباریست مصد به نظر در باب مشتقات روی ذاته ذاتون یسند و علیه حدسون ما نه حدسون یسند و الازاد در باب مشتقات اصولا در زبان فارسی و همین عربی فرم نمی کنه. در درباب مشتق ذات رو یلاح از ذات اولاً این ذات رو به او چیزی نسبت میده. و اما در باب فیل در باب فیل یلا هزول حدث اولا نه یلا هزول ذات پهمل بکنیم در باب فیل اون حدث لحاظ میشه یلا هزول حدث و یسند الى ذات ما در باب فیل به نحو حرکت سیلانیه سیلانیه من الادم الى الوجود یعنی اون حدث رو به نحر این که نبود و شد یعنی عدم و وجود رو در نظر میگیره وقتی میگه قام زیدون این معناش اینه که میخواد قیام رو خوب دقیق بکنیم قیام رو نسبت بده به شخصی به این نحر که این قیام نبود و شد حالا اگر در ماضی نبود و شد در ماضی میشه مازی ماضی آم. اگر الان نبود در فیلم مستقبل شد یقوم سیقوم وقتی میگه سیقوم و زیدون تعمال اون حدث رو نسبت به ذات میده به نهر حرکت سیالانیه به نهر این نوع حرکت سیال از عدم به وجود حالا این عدم به وجود رو قبل از زمان اخبار در نظر بگیر میشه ماضی زمان اخبار میشه ها بعد از زمان اخبار میشه استقبال. معیارش هم زمان اخباره به تاگونه پس بنابراین شما چون در فعل حدث رو نگاه میکنید و نسبت به ذات میدید شما دیگه حالت جدیدی رو در ذات بینید. صفتی در ذات پیدا نمیشه مثلا چاهو چاهو چاهوست حالا این شخص طوانست با چاهو در رو باز بکنه در چاهو صفتی پیدا نمیشه در چاقو حالتی پیدا نمیشه اون که پیدا شده فتح الباب بسته اونی که محت نظره باز کردن دره بگره کنه این منظره با این باز کردن رو نسبت میده به شخص بدون این که در اون صفت جدیدی پیدا بشه فتح الباب بسته اما اگر بخواد بگه مفتاح اگر بخواد بگه کلید مفتاح اون یک قطعه آهنیه که باید دارای شکل خاصی بشه که در رو باز بکنه ترجم بود وقتی بخواییم بگیم مفتاح کردیم این مفتاح رو چه میگیم ذات رو در نظر میگیریم این ذات تلبوس پیدا میکنه به صفت فت فتبالبا میخواد زاد تلبس پیدا بکنه بیر این سفر خواهی نخواهی در زاد باید تغییر پیدا بشه یک قطعه آهن این طوریه این رو نمیگن مفتاح این قطعه آهن باید دارای شکل خاصی بشه تکر کردید وقتی دارای شکل خاصی شد اون لفتش میگن مفتاح قبیل عبارت اینسانیست که میتواند علاج بکنه پس در شخص انسان باید یک صفت پیدا بشه در شخص باید یک صفت پیدا بشه که بر اساس اون صفت بتونه الاج رو انجام بده بتونه معالجه بکنه بتونه مرض رو تبدیل به صحبت بکنه صحب عاده صحت بکنه و لذا ممکن است بگیم فلانی حال فلانی رو خوب کرد و دفت اما تعبیر نیست. حالش رو خوب کرد اما تعبیر نیست. این نکتهش اینه اسناد حدیثی اسناد فعلی با اسناد اشتقاقی فرق اساسی داره. اون نکته ادبیش هم روشن شد چون در اسناد اشتقاقی این تصوری که میگن مثلا فاعل زارب کسی که ضرب بود نه ضربی که به شخص نه در فاعل ابتداان ذاته ذات رو در نظر میگیره به یک چیزی رو نسبت میگه انهایی نسبت هم مختلفه یا حرفت یا سرعت یا تلبس الاخر انهای تلبس اون نسبتی که هست که انها باید اون نسبت نمخواه بشید ولی در اصناد اشتباقی باید توی ذات یک تغییری بشه اگر توی ذات اون تغییر شد اون وقت اونجا اصناد اشتقاقی تغییه اما در اسناد فعلی اون تغییر لازم نیست چرا چون تو اسناد فعلی مذهبش و نظرش روی خود هدسه. پس تفسیری که با الان می‌بینیم و فرق بین فعل و بین مشت در مشت ذاتون البته این رو ما توضیحاتش رو سابقا عرض کردیم مراد از ذات نکن جنسش مراد از ذات یعنی ما حتی میشه بگه از صلوات واجبات و واجبات و... بخوره به صلوات مثلا حتی ممکنه به اعتباریات باشه لازم نیست حتت وجود حقیقی داشته باشه مراد از ذات اینه مراد از ذات اینه نه اینکه غرض از ذات مثلا آهن باشه یا سنگ باشه مراد از ذات شما باید یک چیزی رو ذات رو تصور بکنید حالا هر نهری اون ذات هست وجود حقیقی داره عرز وجود اعتباری داره وجود قانونی داره وجود خیالی داره آتفی اون بس کار نداره اون هم نهر وجود ذهنی داره ما به وجود لحظی داره انهای وجود میشوندش تصور کن اون مهم نیست مهم نیست تصور یک ذاتی رو میکنی اون از این به نحوی از میکنی. این ذات به نهری از انهای تلبس امر رو نسفر کنی این امر با اون ذات باید تخیری درش پیدا بشه مثلا قائم قائم کسی که مثلا این صفت خاص داره جالس نیست نائم نیست یعنی باید تویش یک حالت پیدا بشه تا اون حالت پیدا نشه راره این باید یک فعلی از اون صادر بشه تا بگم راره مضروب مضروب اون تیسی که از باید اون ذر در اون واقع بشه اما اگر ترس خواست بزنه به اون نکرد نمیدیم مضروب مضروب باید یک خصوصیتی. در زاد ده قسمتون پیدا بشه به لحاظ حدوث اون خصوصیت در ذات که نظر بذاده شما مشتقه به کارون اسم فائل، اسم مکان اسم زمان مثلا میگیم به اینجا مدرسه مدرس رو وقتی میگیم که یعنی یک اتاقی رو باید در نظر بگیریم اون اتاق رو یک سفتی درش باشه تو بشه مدرس و لظام الان هم میگن مثلا مسجدی یک جا به دو جوره یا باید وقت لخزی باشه بکر جلت رو مسجدن یا باید وقت عملی باشه بقید خودشون بسه ماهاتاتی بسه اینجار صافته مردم آنها نماز کندن خبشون آنها نماس کندن اما جواست میشه مسجد و لظام به یک مناسبت که ما از کردیم در بحث مسجد زرار این تصوری شده که مثلا مثلا روی اناوین حکومتی میشه این مسجد رو از به این بردن مثل مسجد زاکت پیغمه از کردیم اونجا دقیق نشده اون اصلا مسجد نبود چون اونها اون رو مرکزی برای نها و حتی به عنوان جای پایگاه جاسوسی مرکز تجسس برای روم ولذا درباران داره ولدین تخد و مسجدن ررارن تخد و مزجد. یعنی درمه دقل کردی این ها جهر کردن یه چهار بیواری بوده چهار تا منافق نشستن نماسونه گفت مسجد این نمیشه مسجد بیرین نمیشه سرده قرفی هم نداره در خدا داریم این سرده قرفی شما اشتباه کرد این مسجد نیست نه این که ما مسجدیت قبول دارم دیاریم خرابش مکن دو تا بحثه یعنی این صفت مسجدیت اون تغییری که در زاست باید بشه اینجا نیامد مسجد چاردیواری نیست یک چاردیواری که باید در این چهار دیوار با صفت مسجد بودن این یا بانیت واقف میشه که جهر تو اون مسجدن یا با عمل مؤمنی میشه عمل خود بانی مثلا یا مؤمنی این میشه مسجدیت میشه مقبره مقبره جایی میشه که به اصطلاح یا وقت میکنه یا جایی میشه که عملا مسلمان ها در این میکن میشه میکنن یعنی اون قطعه زمین صفت مقبره پیدا میکنه قطعه زمین کی صفت مقبره پیدا میکنه وقتی صفت مقبره پیدا میکنه که به اصطلاح در اون درد میشه ما در روایاتی که از اهل سنب داریم لا صلیف المغبر سنیان و رسول الله در مغبره ما هم داریم ما یکی از روایات ما که از اموار ساباتیه که من احتمال نمیشون شده امدن این کار کرده از این خیلی آثار داره که من را نمیخوام مراده آثارش بشم ایشون راجی لافت و سلیف به جای مغبره بین رو برده حتی از اصحاب ما فتوه داره که تو که اصحاب فل مقرار بین القبور بین القبور بقید صورت اماره. من فکر میکنم اممار ساباتی میخواسته خیلی بگه اون نهن نبیانه یعنی صلاح فل مقبره مراده از مقبره جایی که فل قبور باشه خب مثلا تو شما یک ساختمان رو بگیری این با از ما وقت کردم مقبره در خودم و خانواده خودم هنوز هم کسی دفت نک من فکر بکنم اما حساباتی مخاطب با یک لطافت این رو بگه خوب درست بکنید. اگر شما وقت بکنید به عنوان مغبره ولیکن عملا درست نشده سوال؟ رو مثل مسجد مسجد این شما جایی رو وقت بکنید به عنوان مسجد رو نماز رو اون خوب مسجد هم رو داره می کنم رو آیا مغبره همینطوره؟ و رو سرسون نمی خواستم یا نه اقوام مقبره یعنی ما توت فنافی القبور به فیل باید توی خوبور باشه اونه دبور داریم میگه مراد پیغمبر نه سلاف المقبره اونجایی که به فیل خبره من احتمال میدم البته نه هیچ چه از فوقایی ما ننرسه اما ادهی که فتوزن همچون فتوزن گفتن تو که بین القبور و فیل مقبره دو تا گرفتن بین القبور سلاف امال ثاباتیه من نظرش اینه که عمار صاباتی نه اینکه نفهمید اون حدیث رو پزشک که عمار صاباتی مثلا عربیش قوی نبود فارسیوال صاباتی مذهب بود لذا به این مغرض خاص نه من احتمال میدم که عمار صاباتی از من فرماله متریزا رو, رو میسرا دین حدیث گذاشتید که کل نایان طالع میسته شاید مراد عمار صاباتی این باشه اون نه نبی یعنی صلات بالمقبره مراد از مقبره نه عنوان مقبره اونی که بالفعل م اونش اینطیل مقبره اونش لطفن پیر قبور اما اگر وقفه به عنوان مقبره خوب دقت میگه آ من اینجوری مقبره قرار میدم برای یک نفرم درک نشود میگه لا تو سلام قبور شاید نظرم از ازم شاید هیچ از مشایخ ندگفت چه میل من استنباط خود شخصی خودم شاید نظرم مبارک دقت کنید چی میخوام بگه چون مقبره یک نوع عنوان اشتباهیه مبدعه اشتباه رو دفن القبور می دانه نه مجرد جهل ازباه و لذا لاتوسل بین القبور اشون داده که بگیم بین القبور در حباره اون این مقبره بگیم در حدیث رسول الله نه لاتوسل فیلم مقبره در رواد رسول جور اتمام هست مقبره چون اموار حسابتی به همه شما فرصو اولارم نگاه کنیم تو چه علام هست؟ مرتفعه اولکینی که خودت در رو به ما با اولارم اون روی ها این فهم اون آغاز علمای ما نرشتن سلاث در مغبره مطروحه سلاث بیدر قبودنه علمای ما اضافه کردم این از روز امواریه دو تو عنوان گرفتن من به ذهنم میاد که اموار هدفش اینه حالا اگر یک جایی مغبره بود و مسلمان ها به مقداره اما پنجه سال کسی دفت نکرده دیگه شده زمین عادی 100 سال دفت نکرد آیا سلاح در اینجا کراه هست داره او بگه نه چون قبول نیست. پس ما یه فهمه فهم, فهم روایته. آلا این بگم فهمش حجت یا نه دقیقه کردی پس نه این که دوتا عنوانه تو قایه ما دوتا عنوان قرار دازن تو بشنه شد چون اون میخواد دیگه مقد یعنی یعنی یک تکه ای از زمین رو تصور بکنید این بلاوازه تلبس به دفن و قبور میشه مقبره بلا مقبره نیست یه نظر در خارج شدن بنابراین برگردیم به حدیث پس بنابراین وقتی که ایشون میگه و امدارا پر اندیاریتام توقنیان و نیستا دو مخنیتین خوب بکنید اسناد حدسی رو میده اسناد اشتقاقی رو نمیده حالا فرقش چیه این نکته شیء انصافا خود درصافا هم اجمالا نوشتم انصافا وجودی رو میشه گفت اما دقیقاً نمیتونیم الان یکی رو نسبت بدیم مثلا ممکن است مراد از مغنیه یعنی جاریایی بزنن که کارشون این بود مثلا شغلشون این بود و این دو تا جاریه که پیشونامش شغلشون نبود اما صداشون خوب بود اینش حرام بود که صفته نوشته باشه صفه مغنیه بودن حرام بود ها محمد اینو بگه که مخاط بگه این عنوان مغنيه نبودن یا من مغنيه نبودن یعنی شو مغنيه نبودن یعنی به اون عنوانی که مثلا دوره آموزش دیده باشه و انواع صداها و اینها مراد احتمال مرادیم اما صداشون خوب بود این دو تا جاریه با صدای خوب میخوندن چه دردی میگه که والا محمد میگه اینکه است ممکن است ما بگیم غنای نفسه حرام نیست بلکه <تصفيق> چرا لارو مغنیه و مغنی یک هم داره مثلا ممکن است مرادش این باشه که مثلا متعارف شد در اون زمنی که مغنیه بودن همراه با غنا مثلا وقت هم بوده با مثال یا انواع آلات هم بوده این تغنیان یعنی فقط صدا چیز دیگری که متعارف گفتم در اینجا صدا در مغنیاتی یعنی اون چیزهای دیگه اینم دو تا احتمال من یک احتمال دیگه میدم که شاید لیست ها به مغمیتی نمیشتم اهل سنن شاید در اون زمان بوده که مغمیه ها غالبا عمه باشن هره نباشن شاید این دو نفر دو دختر از انصار بودن و کنیز نبودن دختر عادی بودن اینها داشتن با صدای خوب میخوندن یک احتوال دیگه هم باز ما به ذهن رسیده که شاید اگر این طور باشه اصلا حدیث رو مهمش رو عوض بکنه شاید جاریتان تغرمی ها مراده جاریتان دختر بچه باشه تو در لغت عرب جاریه رو به همه و کنیز هم میگم به دختر بچه هم میگم شاید نظر آیشه به این بوده که اینها ها زنهای مغنیه مغنیتین یعنی در این زن مغنیه نبودن انصافش به نظر هم میاد حالا ما چون بون آیشه که اعتباضی نذاریم احتمالش داره که شاید مراد سونیا بد نرو کردن شاید مراد این بوده دو تا دختر بچه از انصار بودن گاهی میشه بودای بچه های شعرهایی بیخونن رسرانه این اینا اون شعری ای که مال حالا یوم باعث خود منم با سنیا بحث با باعث یا بغاثه با غین یا عین زبطش هم مختلفه میشتر باعث زبط کردن و هر حال یه شعری در قبل از اسلام به جنگی بوده بین اوسف خزرج بین اونها بوده بنام یوم باعث اون شعرها رو که به عنوان افتخار به مثلا به کشته های اینها باشه و به شجاعت اونها باشه این شعرها رو این بقیشه ها سبیان شاید مراد آ ل اینکه پیامبر رو ده ماه یا ابا بحث به نبویوم یعنی مخاص این روزا اینا رو میخونه. البته این رد به موضوعی که اهل سنت گفتن نه به هر حال در کلمات آیش مشکل کارش اینه که در این روایت حالا ما عکسش قبول نداریم که خود اونها مشکل دارن دقیقاً فرق بین قغنمیان این فرق رو گذاشته اما دلیلشون احتمالات زیادیه بواسطه با اجتماعی باز با تاریخی احتمالات فراوانی اگر اینجوری که من معنا کردم به ذهنم بیاد یک مقدار از مشکل کار کمتر تر <تصفيق> کلمه طغرمیان و به این مناسبه تا میبهت نقوی رو از کردیم که انشاءالا نافر باشیم این نمیشه ها هم هستم که این رو گذاشتن بعض اهل سنت تغنی یعنی یعنی این به اصطلاح آدم با آواز بخونه و به حد الها اینها نرزه یه حدیث معمودی شاید تو خیلال بحث آینده به یک مناسبه ده آخر بحث اشاره بشه بکنم در حد اشاره لیس من نامنلم یتغنه به قرآن این مطلب شما هر این بحث احل سنت دارن لیس من نامنلم یتغنه به قرآن که این رو بخ یعنی قرآن با صدای خوب بخونه نه قینای مصطلح ما منظور این هست ایده ی از اهل سنت از بزرگانشون هست یکغنل به معنای یکغن نیاز بشه نه جنا از غنا دینیاری کسی که با قران بی نیاز نشه این علما نیست مراد از بغغنل تغنلی نیست اینجا این رو به که بعدا دیگه این رو خود اهل سنت دارن این لیست منام من الله متقل نبقران رو گفتن که شود تقلیه به بقران جایز یا نااجزی نیست همین ی کشورهای آن دی. بعضی گفتند تقلیه به بقران استهباب دارد چون که آن لیست منام من الله متقل نبقران. اما خودش هم که نه. البته انصاف قضیه دیگر گفتن که انصافا لذ در تقلیه نه در یعنایی بینی آذیب لبی است. یعنی یه استقنا ریز از یه تقلیه است. انصافا هم اینطوره. انصافا دوست بودن طوسی به این مطلب حالا برگردیم به فتوی بحث خودمون ما چون راجع به آیات صحبت کردیم اول آیه‌ای که خوندیم تا و من یاد آورم اصلا تا اینکه می‌کنی راجع بحث جانبی شد اول آیه آیه مبارکه بنویسن 8 حدیث اول حدیثی کردیم. ادبه از کردیم از اهل سنت اصحاب بین آیه تمسک کردن به پیغمبر نسبت داده شده و که مشهور بین علمای اهل سنت شهرت واسعه کلا بی است بود از در ذیل آیه چیزی صحابه رو قبول میکنن اما خود رسول صحابه و تابقین و خوبه ها رو قبول دارن هم رسول الله رو قبول نفتند این را جبید اشکاله که اساسی شده این اشکال رو کرد ابن حرزم یه آیه مبارکه و یعنی و, و این مراد اتخاذ استهزاع به قرآنه نه مراد فقط لحول حدیث باشه لحول حدیث رو برنان استهزاع به آیات الله بید. یک ابنه هزم چین مطلبی داره در تفسیر تبری در زیل آیه الان تو ذهنم نیست از بعضی از به نظر یا تابعی نهوی میکنه که آیه اصلا در مشرکینه اصلا در مسلمان ها نیست این غیر از اشکاله و من الناس منیشتر و حدیث این مال مشرکینه این اصلا مال ما نیست چون یکی لیوزه در سبیل الله و یک تخل و, و ها لعند به اضافت لا علیه آی... آیه آیه داشت به اضافت لا علیه آیه ها آن یا که والا مستكبرا کَرَن و کَرَن فی ادنیه ذکرا ببینید وضع انسانی سنگی. گوش سنگینه اصلا آیات ما رو درست نمیشه این در کتاب تفسیر تدری آمده که با مجموعه آیه بعد و شواهد اصلا این آیه مربوط به مشرکینه مربوط به قنای بین مسلمان ها نیست هست خدمتون نتیجه نهایی رو برعزو امساق قدیه آیه در سوره لغمانه آیه جز آیات محیه هست من نمیشه شده که شخصی کتاب های مثلا فارس و قدیم روستم و اسفندی ها رو به مشکلی میداد گوه این ها از دسته هایی که پیمنبر میتونم بهتره بیگم کسر خالی پیمنبر مثلا سهت و سهت و سهت الله هرم و ادهی هم از جاریه ها و مغن میباشی و شرابیدن به مصروونا پیشا مو بین مسلمین خوشتر بهتر از اون هر کوسی که ایشون میه این حالی در این شعر ناظر شد مولانا من ناس منیشتری اش تعالی و حدیث که این لعله حدیث شامل هر دو می هم احادیثی که کلماتی که تاریکی که هست که و هم غنا و کید یه د زنانی لي الله عن ها رو منحرف بکنه و يرتح له اوزو استهزا بکنه و اذا بالله به ادات تفلاه علیه آیاتونه همین شخص اگر آیات رو بشناره وله مستقی برام یعنی این شخصی که ترویج باطل و لحوال حدیث میکنه این در مقابل آیات وله مستقی برام انصاف قلیه از این آیه خوب در من بعد تکمیل میکنم از این آیه مبارکی نقطه شبیل لطیفی هم در میاد این آیه در محیط مکه یک نقطه خیلی ذریفیش اینه که معلوم میشه که سماع قناع و لحول حدیث در مقابل سماع آیات بوده یعنی لحب الحدیث در مقابل لاتتلا آیات آیاتلا بوده و در مکه یکی از راه های مبارزه با قرآن در مقابل آیات، ترویج یک لام و لحیس و من الناس، من یشتر لام و اگر چند تا آیه دیگه که در روایات ما آمده از کردیم در روایات ما چند تا آیا آمده، حالا مردم به آیاتی رو که باز در نیامده. یکی از آیاتی که در روایات ما داده، در سوریه نجمه که آخر سوریه نجم. چون آخر آخر آیه سوری نجم سجده داره آیه قبل از آخر سوری آخر آیه یعنی یک آیه قبل از آخر در سوری مبارک نجم در اونجا ارز که بله در اونجا عرف بن در حدیث تعجبون آیه آیه اینطوره آیه از این سخنی که ما پیغمبر ما میگه شما تعجب میکنید و و تلحکون ولا تبکون میخندیم به این در مقابل با آیه مبارکه شما خنده میکنید و هنتم سامتون سامدون با سین و میم و دال سامدون و هنتم سامدون از ابن عباس نقل شده از اکرمه از ابن عباس که سامد در اینجا به معنای مغنی غنا میگین در لغت همیر بوده که سامد به معنای غناس و سمون و این میگفتن, به اصم, دیلن به کنیز میگفتن اصم دیلن ها ای غنی اما لفظ لغز شامد و سمود احتمالا اصلش عربی نبوده چون اشتقاقاتی که الان داره خیلی مناسب نیست من دیگه الان وارد بحثای لغوی میخوام بشم چون این بحثه خاصی در در مقطع شناسی انصافاً انسان احساس میکنه که بله در سوره مبارکه نجم ارمنه ها در حدیث تعجبو ظاهرا مراد از این حدیث آیات مبارک هست این سوره هم مکیه خود سیاقه آیات همشو میذاره بقیه چیزی که در این سوره مبارک باز داره ظاهرا این تعبیر دیگه نیست از اون آیه خونده اون آیه الاهوال حدیث در مقابل تطلاعه آیات کنا از من هذا حدیث صحیحون می از قرآن حدیث حاضر حدیث آیات مبارکه عفمن حاضر حدیث تعجب بود و تمحكون ولا تپود و انتم صامدون دقیقا این صافه البته بعضی‌ها میگن صامدون ولی از کلم اشتقاقاتی الان خود این اشتقاقاتی این ماده الان که عربی کار می‌ذاره فلان سال معنی کوده سماد معنی کوده تسمید و لرض یعنی کود دادر به زمین و احتمالاً چیز دیگری بوده و لغت دیگری بوده که حالا به این صورت در آمده به هر حال از ابن عباس نقل شده که سامدون اونه اینکه نقل ابن عباس رو قبول نکردن آلومن گفتن به قرنی ترحکون و لا ترحکون و انتون سامدون یعنی لامون مشکل لحوله بزنی این آیه مواله که انصافن این هم دلالتش اجموع اصلا این آیه هم نه هم کلی عجیبه این هم جده اون نکته‌ای که حالا می‌خوام یواشاش نکته رو بشه معلوم میشه که اصولا در مکه ها که در مکه بودن یک چیز عجیبی بوده غیر از اینکه حالا جنا ب یک صورت مثلا خاصی بوده که می‌گه امروز به رسم توضیح بدیم فردا توضیحش عرض می‌کنین اصولا این جنا در مقابل آیات کتاب بوده اصل این ها و ها در مقابل یعنی در ذهنیت مثلا ذهنیت مثلا به بامسان مثلا در مثلا در زمان ما مثلا کاوارها در مقابل مراکز فرهنگی اینجوری تقابلش اینجوری بوده یعنی جنایی که در اون زمان در روشن شد نکته یعنی یک نکته در جنا این بوده که این جنا در مقابل قرآن اثر نهار در حدیث تعجب از قرآن تعجب میکنی و انتم صاملون دوپل بنا میگی و بلد ناس من یک شری لغو الحدیث لیظن ان سبیل الله و یتخذها حزوا علی بجی خودش به الالتوت لا علی آیاتنا چه غریبه و لا این کسی که لغو الحدیث میخره بلکری اضافه تطلیه تططلیه علی آیاتنا لا مستكبر این قبول نمیکنه. این نیست هر دو سوره مکی هستند هر دو آیه مکی هستند این نشون میده که تا دوره این یه واشوش بگیم این مقدمه کار رو بی منشأ این که ادعایم از, از سنی ها گفتن این آیات به غنا نمیخوره اون ذهنیتی که در مکه بوده که این آیات غنا در مقابل آیات الهی است غنا خسارت این مجالس غنای، این لحظه لری، حالا اینجا به اثرب نکنم. مسولان غنای، که در مکی بوده خیلی تفاوت با غنای مرجع داشته. من الان یک مقدارش از کم، برایش این چالا باز فردا ازش میکنم. پس یک نکته تو اینجا غنایی، ولی زم مثل ابن حذب، حالا ابن حذب این نکته ای مرا دعوت کرده. ابن حذب میگه مرادی از تقداوه زمان، نفرات غنای است. اون شرط دیگری هم که الان اسمشو زینب رضو تصریح تبریه هست. میگه نه اصلا آیه مال مشکی نه یعنی مال مکه هست روشن تو چون در ذهنی مخواب یه آشاش دید ذهنی ها دیگه بعدم صحابه اختلافی ده کنه مخواب براتون روشن بود معلوم میشه در ذهنیت مدید مکه در اون سیزده سال مکه این ذهنیت بود که غنا مراکز غنا اون مغنیه اینا در ممال قرآن بودن و ادا سطلا علیه آیاتونا و لا مست تفهمنها در حدیث تحجبون از آیات کتاب تعجب می و انتوم سامدو رو در مقابل آیات کتاب شما رو به غنا میاریم از جمله آیات دیگری که ما باز در اینجا تمثل شده در بین اهل سنت که این خب واقعا با یک شواهد میشه این رو قبولش کرد در همین سوره به اصطلاح مبارکه بنی اسرائیل یا سوره اسراء یه آیه است که در اوصاف شیطان اول مالا آدم و قول نادر نداره که زدود آدم حسد آدم نیست تا اینجا میاد که قاله اضحب خداوند به شیطان میگه برو کاری که میگه وستفز منستفعت منهم به سوتک اهل سنک این آیه تمسو کردن تصریح هم که لحزیشون من که منستفعت منهم به صوتک یعنی دنا باز کردیم این این مطلب رو اجوان مثلا همین حدیث که از آیش خوندی وقتی که همون داخل میشیم یه هم از تو شیطان میگه این در رسول الله توی یه جهه باز باید نه که یک زنی دفت میزد دفت در مقابل رسول الله و قنام میکن عمر که آمد دفت قایم کرد پیغمبر رو یعنی همون که شیطان یه رو به یعنی این همون که بناتبن نجیب داره که ابو برد گفت که صوت و شیطان هم در رسول الله از مجموعه شواهد در میاد که لاعقل در ذهن مسلمان ها این روشن بوده که صوت و گرنا صوت و شیطان این آیه هم مکیه سوره اصرا هم مکیه این آیه هم مکیه لذا خود دقیقه بکنید ما این نکتری مهم بگیم شاید اون نکتری مهم این بود که بعدها چون غنائی که در مدینه بود غیر از غنائی مکه بود اینا آمدن گفتن که این غنائی جایزه اون اون غنائی نیستی در مکه بود ما اینشالله حضرت بکنید حتی نسبت به من یک شاهد شکم تا تکمیل تکبیل کنید بخیم خمری که در مکه بود خمر انگوری بود شراب انگوری بود اما شرابی که در مدینه بود شراب خورمایی بود و این رو اهل سنت هم داره. ما هم داریم که نبیز بود لیکن اهل سنت دارن که وقتی که پیرم بر شراب رو در مدینه تحریم کردن اون شرابی که در مدینه تحریم شراب خرمایی بود اما شراب انگوری کلن حرام بود در شراب الهی حرام بود این شراب خرمایی رو به صحبت رسول الله حرام کردن این دوستان رو باید باید رسولان خراب کردن چون در ما رو به بیره خراب پس یک شراب در تمام شراب حرام بود که شراب انگوری بود و این توی مکه بود محل قروشی شراب طائف در طائف شراب می‌خورد اما در مدینه چون دور بود خودش هم قرباداش شراب متوارف مدینه خرمایی بود حتی در کتب اهل سنت ما نظری در تواریخ اهل شاد نداره که بعد ما حرمه رسول الله الخمر فل مدینه تمام شراب های مدینه تمام خمر مدینه کان به نظر جز یک دانه اصلاس سقا یعنی مثل خیلی کمانم مثل پوست بوستن که برز مثل خیلی دوستن. یکی که نصفش انگوری بود نصفش خرمایی بود تماما خرمایی بود کل شرابی در مدینه بود و پیغم بر تحریم کردن و ایختر دور خرمانی بود خوب دقیق بکنین بعدها هم که اهل کوف معروف شدن به خوردن شراب بگفتن همین شراب خرمایی بود همین بود. معلوم شد یک شراب در مکه بود پیغمبر تحلیم کرد مدینه رو نوری دیگر که این اختلافی شد یک قناه هم در مکه بود یک قناه هم تو مدینه بود شراب اگر اون خود بود در قنام سازجه ده سال بعد نه اونی که تحلیم کرد سنت رسوله شراب خورماییه شراب, شراب انگوری رو در مکه این که در مکه اینی که نوشتن سونی هم نوشتن که عمر گفت با سه بار آیه نازل شد اینا همه مال شراب خورماییه علمای ما یعنی سونی هم همونجور ملکفت نشود اما اینطور نیست صحیحش اونه که